فصل عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت جمعیت زیادی دور او جمع شدند به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب سوار شود و در آن بنشیند مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مسل تعانیم زیادی به آنها داد در ضمن تعلیم آنها گفت گوش کن برزگری برای کاشتن بذر به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بذر بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردن بعضی از دانه ها روی سنگلاخ جایی که خاک کم بود افتاد و چون زمین عمقی نداشت، زود سبز شد. اما وقتی خورشید بر آنها تابید، همه سوختند و چون ریشه ای نداشتند، خشک شدند. مقداری از بعضها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند و بعضی از بعضها در داخل خاک خوب افتادند و سب شده رشد کردند و سمر آوردند و حاصل آنها سی برابر شست برابر و صد برابر و بعد اضافه کرد هر که گوش شنوا دارد بشتبه. وقتی ایسا تنها بود، همراهانش با آن دوازده نفر درباره مفهوم این مسئله از او سوال کردند او جواب داد، قدرکت درک اسرار پادشاه خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می شود، تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند. پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، موادا به سوی خدا برگردن و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت شما این مسئله را نمیفهمید؟ پس چگونه سایر مسئله ها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش میکنن دانه هایی که در کنار راه میافتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را میشنوند شیطان میآید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است میرو رو باید دانه که در زمین سنگ لاخ می مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنن. اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام، زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید فورا دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها میافتند مانند کسانی هستند که کلام را میشنوند اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل میشوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی میسازند. می سازند و دانه هایی که در خاک خوب میافتند به کسانی میمانند که کلام را میشنوند و از آن استقبال می کنند و سی برابر و شست برابر و 100 برابر ثمر می‌آورد. عیسا بانها فرمود: آیا کسی چراغ را میآورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه. آن را می‌آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز بانها آنها فرمود، در آنچه که میشنوید دقت کنید، با هر پیمانهی که بدهید، با همان پیمانه هم میگیرید، و چیزی هم علاوه بر آن دریافت میدارید، هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد، و آن که ندارد، آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود، پادشاه خدا مانند مردی است که در مزره خود بزر میپاشد. دانه سبط می شود و رشد می کند اما چطور او نمی داند؟ شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و سمر بیاورد اول جوانه بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه اما به محض اینکه محصول میرسد او با داس خود به کار مشغول می شود چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه کنم یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است اما وقتی که کاشته شود رشد می کند. و از هر بوته دیگری بلندتر می‌گردند و شاخه‌های آن آنقدر بزرگ می شود که پرندگان می‌توانند در سایه آن لانه بسازند عیسی با مسائل زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می‌کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی‌گفت اما وقتی تنها بودند همه چیز را برای شاگردان خود شرح میداد اصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود به آن طرف دریا برویم پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردن و های دیگری هم همراه آنها بود طوفان شدیدی برخواست و امواج به قایق میزد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود او را بیدار کردند و به او گفتند ای استاد مگر در فکر ما نیستی نزدیک از غرق شویم او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت ساکت و آرام شو باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد بعد عیسی به ایشان فرمود چرا اینقدر ترسیدید آیا هنوز ایمان ندارید آنها وحشت زده به یکدیگر میگفتند این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنند